فصل دوم بخش دوم. من مانند فرمانده ای که نقشی را تر و یا اجرا کرده و هر آن منتظر خبر پیروزی پیروزیز در استراب بودم. دلم می تپید، اما به کامیابی خود اطمینان داشتم. قیزم گرفته بود. بی خودی با خودم حرف می زدم. به خودم می گفتم به من بی اتنایی می کنی؟ به من محل نمی گذاری. برای من آسمان و ریسمان می بافی؟ با آدمی که در زندگی از هیچ کس توقعی ندارد و به همین جهت زبانش درازه است. با آدمی که دیوانه استاد است. با آدمی که شبها خواب چشمان تو را دیده، با من؟ با کسی که از همان نگاه اول عداوتوار تو را دریافت و فهمید با چه کسی سر و کار دارد. حالا ببینیم که کی شیرین زبانه می کند؟ حالا ببینیم که کی به خواهش التماس می‌افتد. یقین داشته باش که افسون چشم همان بار اول بود. دیگر گذشت. من قافل شدم. مردی چون استاد را از پای در آوردی. دیگر باید به میل و اراده من باشی. اطمینان به کامیابی قطعی بود. با وجود این دو دودلی دست از تن و جان بر نمی و تارهای روهم را میخورد. مبادا این زن برای اینکه خودش را لونده اسمی از پرده چشمهایش نبرد. آن وقت من باختم. زن ناشناس داشت به جای خالی پرده مفقود نزدیک می شد. تشویش من هر آن فزونتر تر میشد. در این حال بیشتر خودداری میکردم برای من موضوع این زن مرگ و یا زندگی بود. اگر مردم ایران امروز که در تلاش و کوشش است، بفهمن که استاد چه سر ناترسی داشت و چگونه مبارزه می کرد. اگر امروز بتوانند درک کنند که نقاش بزرگ ایران در این حال در امور کشور خود مستقیما دخالت می کرد و سرنوشت خود را با سرنوشت مردم کشورش تو هم می دانست، بله آن وقت بیشتر تشویق میشدند بیشتر میزدند و میخوردند و خورهٔ یاس علاقگی کمتر در وجود آنها تأثیر داشت باید به هنرمندان گفت و فهمان که استاد نقاش را چرا تبعید کردند اگر کسی در آن دوران ستمگری که پدر با ترس و لرز با فرزندانش همبام بود ایستادگی میکرد امروز که آزادی عمل بیشتری در اثر کوشش و از های همین امثال استاد و هواخواهانش برای همه کس فراهم است هر انسان زندگی وظیفه‌ای دارد اما دلحوره من فقط به این دلیل نبود خودخواهی من هم اثر مهمی داشت اصلاً وقتی در تالار موزه ایستاده بودم و زن ناشناس را با چشمم بال می‌کردم آنچه امروز به این روشنی و دقت می‌بینم گسسته و, و بار در نظرم موج می‌زد بله خودخواهی من هم اثر مهمی داشت بالاخره من تنها کسی بودم که می توانستم پرده از روی زندگانی پرمشقت استاد بردارم من تمام تابلوهای او را امیغن و دقیقا مورد مطالعه قرار داده بودم تمام یادداشت‌های داشتای هواشی کتاب را خوانده بودم کی درباره باره به اندازه من زحمت کشیده بود خونه دل خورده بود کی مثل من استاد را میشناسد؟ چقدر چقدر زندگی خود کوشیدم که هنرمند شوم؟ بدبختانه وسیله نداشتم با وجود استعداد برای من دیگر جاست تجسم زندگی استاد هدفی نمانده و کلید این موفقیت در دست این زن است من حاضر بودم که در برابرش زانو بزنم دامنش را بگیرم و از او بخواهم که تقاضای مرا اجابت کند زن به محلی که جایی پرده چشمهایش بود نزدیک شد نگاهی به آن انداخت و رد شد دو مرتبه برگشت دستش را از کمرش برداشت سرش را به عقب انداخت ناگهان خشکش زد. با سر انگشتش گردی را که قاب تابلو باقی گذاشته بود لمس کرد. رو کرد به من رنگش پریده بود چشمایش می درخشید. مثل اینکه میخواست بگوید دارید مرا فریب می دهید؟ چه نیرنگی میزنی؟ تابلو کجاست؟ اما به او رو ندادم من خونسرد سرد بودم. دستهایم را گرم می کردم و به شعله کبود رنگ بخاری مینگریستم. این لحظه پردگاه بود او باید به حرف بیاید آقای نازم مثل اینکه جای یک پرده خالی است بله خانم ممکن است مگر پرده استاد را از این تالار بیرون هم می بله میبرم و گایی هم گم می شود مشتری هم پیدا می کند این پردهها رو را می فروشید همه کاری ممکن است چطور ممکن است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 این پرده اینجا رو فروخته اند؟ شاید ممکنم هست که در یکی از کلاس ها باشد و یکی از شاگردان و مدرسه دارد از روی آن کپی می کند. هیچ یادتان هست که کدام پرده است؟ نه، خاطرم نیست. مسلّم بود این زن برای خاطر پرده چشمایش به حرف خواهد آمد. باز هم مدتی به پرده ها نگریست. از من رو برگرداند. از نا متوجه آثار نقاش شد. در مقابل پرده ای که دو متر نیم طول و یک متر و اندی عرض داشت ایستاد. این پرده از کارهای عالی استاد بود. مرد خوشبانیه ای قوی هیکلی که لباس آراسته ای برتن دارد. در وسط تابلو دیده می شود. در مقابل آینه ایستاده و کلاه لب دارش را با دست راست پایین می کشد. صورت بزرگ و پر از چین و چروکش در آینه پیداست. قریب سلس پرده را پالت بلند و مرد گرفته. کنار آینه روی میز کوچکی اصای کلوفتی تکیه دارد. سیگارش در زیر سیگاری دود می کند طرف راست هیکل نحیف زنی چهل و پنج ساله دیده می شود که دارد از اتاق بیرون می آید لباس بر تن این زن گریه می کند قیافه زن ما و دلنشین نشین اما قمنگیز است لچک سیاهی بر سر کرده و زیر گلو گره زده است و روی لچک کلاه فرنگی زنانه از حسیر سیاه دیده می شود منظر این زن با لچک و کلاه به حدی ماسکه است که اگر آدم فقط این قسمت تابلو را ببیند خندهاش می‌گیرد. مثل اینکه یک زن هر جایی میخواهد در درآورد. اما در قیافه زن شوخی و تمسخر خوانده نمیشود. شود. زنگوی از موم ساخته شده و چیزی نمانده که آب شود و وارود. زیر پرده روی چارچوب نوشته شده جشن کشف حجاب. این را که آدم می‌خواند دیگر خنده‌اش نمیآید، کمی فکر می کند. چه همیتی مرد برای جشن قائل است با کمال اطمینان دارد خود را برای کار مهمی آماده می, می کند. اما از قیافه زن وحشت و استراب ها وید است می داند که دارد خودش را مزحکه مردم می کند چاره چیست باید رفت دستور داد همه باید در جشن کشف هجاب شرکت کنند باید زنهای خودشان را همراه ببرند مرد این امر را کاملا عادی می داند. مگر کسی طبقه دیگری دارد اما بیچار زن مدتی فرانگیز در برابر این پرده ایستاد حد زدم که واقعا زن ناشناس به عمق فاجه که در این پرده به زبان گویا بیان شده پی برده بود داستان دردناکی را این پرده حکایت می کند. این اینطور که کشور نمی کنند. این زن باز هم چادر به سر خواهد کرد و اگر هزار بار او را به مجالس کشفه هجاب ببرن باز هم همان است که بوده استادی و مهارت شگفت در در تجم مرد. که فقط در آینه دیده می شود به کار رفته قیافه آرام است هنوز صورت زن خود را با لباس تازه که به تن کرده با لچک و کلای فرنگی ندیده زن خجالت می کشد شرم دارد از اینکه با این رخت حتی خودش را به شوهرش نشان بدهد گویی دارن آن را میان چیز خارداری می کشند و همکنون خراش تیخهایی را که بدن لختش را ریش ریش می کند می, کند می کشد اما باز منتظر درد پرسید.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 چندین تر از آقا رجب دیوان نسب بود، من همه آنها را قاب کرده بودم، فرنگیس نگاهی به من انداخت، من پیش دستی کردم و گفتم، خانم این نوکر استاد بود است، عجب، این عجب نزدیک بود که اختیار رسکف من برو باید، نزدیک بود بگویم، توف به روی کسی که ادا در میآورد خودداری کردم و به خودم گفتم، سب کن، این نقاب از صورت تو هم میافتد افتد، بدخره به حرف خواهی آمد، بلند گفتم بله خانم این پرده ها هر کدام داستانی دارند هر کدام ای از افکار و احساسات و مرحله از زندگی استاد را حکایت میکند حیف که شما فقط همین امروز را وقت دارید و دیگر نمیتوانید به دیدن این نمایشگاه بیایید و الا من با کمال میل حاضر بودم که کمی برای شما توضیح بدهم خیلی مچکر می میشدم بله همینطور است که میفرمایید من فقط همین امروز در تهران هستم و فردا از تهران میروم من مکرر در روزنامه ها شهر کارهای استاد را خوانده بودم و هیچ وقت فرصت نکردم که آنها را ببینم باز هم شروع کرد به ول گفتن و اگر جلوشون گرفتم باز یک ک میدان می, می شد و دور میگرفت دویدم توی حرفش هیچ تا به حال کارهای استاد را ندیده بودید؟ سال من برایش تازگی داشت مخصوصاً که چون در سیلاب پرگویی افتاده بود. فرصت تفکر نداشت چند لحظه کرد اما این زن قدرت عجیبی داشت و می توانست به تناسب به وضعی که میخواست جلوه سازد، قیافش را وز کند اما همین یک لحظه سکوت همین چینی که بر پیشانیش انداخت همین که چشمایش رو تنگ و باری کرد به من حالی کرد که درون او به این آرامی که می نماید نیست منطقه از کلامات روان و خندهی صورتش مطلبی نمیشد استنباد کرد در جواب من گفت چرا؟ چند سال پیش هم روزی اینجا آمدم، اما خیلی سرسری تماشا میکردم. گمان میکنم که پردههای دیگری هم اینجا بوده است که حالا نیست مثل اینکه شما قیافه فراش مدرسه را هم به خاطر دارید چون وقتی تشریف آوردید متوجه شدید که فراش معوض شده است این پرده که ملاحظه می‌فرمایید تصویر آقا رجب نوکر استاد است که بعدها فراش مدرسه شد آن دفعه که اینجا تشریف آوردید آقا رجب زنده بود و تنها کسی که از زندگی استاد اطلاع کامل داشت همان او بود که دیگر نیست. چند ثانیه ای حکس کردم و بعد آرام و ملایم گفتم و یک زن که ناشناس مانده است. دیگر موقع آن رسیده بود که من آخرین تیرهای ترکش خود را رها کنم. استوها را آماده به حمله ایستاده بودم. خیره به او مینگریستم و می کوشیدم کوچکترین کچکترین های روح او را احساس کنم. زن ابروهایش را در هم کشید. لبانش را نیمه باز کرد. میخواست دروغی بخندد. خنده در لبانش خشک شد. دیگر نمیتوانست مرا تحقیر کند و به بازی بگیرد. اما زبانش هنوز در اختیارش بود. گفت عجب داستان شیرینی و هیچکس این زن را نمیشناسد. هیچ کس جز من این زن را نمیشناسد. دستهایم را از روی بخاری بلند کردم. و به هم مالیدم آهسته به سوی فرنگیز رفتم و چشم چشمایش دوختم. رنگم پریده بود. این بار افزون چشمای من او را گرفت. زن ناشناس یک بار دیگر قفایی از دست رفته را جمع کرد. بلند خندید، اما صوت خنده دیگر تنین نداشت. داشت وا از من می ترسید. می از من دور شود اما قدم های من سریتر بود و او می دو دستی نقابی را که بر چه رای بود نگه دارد. در عین حال تعجب او دیگر آشکار بود. چه می گویید؟ فقط شما این زن را می شناسید؟ با او رو به هم شده اید؟ یک قدم دیگر هم به طرفش رفتم. دیگر فاصله ما از هم از یک متر کمتر بود. زنداش خود را می باخت. آرام و شمرده. در حالی که روی هر کلمه تکیه می کردم به او گفتم بله، با او روبرو شدم چیزی نمانده بود بگویم با او روبرو رو هستم اما دیدم زن هنوز از خود اراده دارد اراده به خش داد از من رو برگرداند نگاهش را متوجه تابلوها کرد و رشته سخن را به دست گرفت میخواست مطلب را عوض کند خود سوالی که از من کرد میرساند که متزلزل شده و میخواست بداند که کی سر او را فاش کرده است پرسید پس نوکرش زن را به شما معرفی کرده هیچکس او را به من معرفی نکرده من خودم او را شناختم چند وقت است که نوکرش مرده سه سال پیش او فوت کرد دارایی استاد در دست او بوده و آنچه باقی وقف اطفال آقا رجب است گاهی اینجا می آیند این پرده ها هم مالا آنهاست نخیر اینها را دولت خریده است دیگر چیزی هم باقی نمانده و شاید تا چند سال دیگر اصلا همه آنها از بین برود همین الان هم بعضی از اینها کپی است. شاگردان استاد میآیند و به اسم اینکه میخواهند از روی آنها بکشند، تابلوها را میبرند. اصل را میفروشند و کپی را برمیگردانند. کسی هم که نیست اصل را از بدل تشخیص دهد. جای تاسف است. دیگر حالا موقعش بود که من بگویم عجب. بالاخره برای این زن ناشناس هم چیز قابل تاسفی در دنیا وجود داشت. نگاهی به ساعت انداختم. مقصودم این بود که زن خیال کند عجله دارم و میخواهم او را هر زودتر دست به سر کنم و پی کار خود بروم. پرسید: آقای نازم شما عجله دارید؟ تیرم به هدف خورد. مقصودم برآورده شد. دل واپس شده بود. به او کمی میدان دادم. بالاخره فهمید که سر در دست من هست خیال نکند که زنجیری او هستم و میتواند با من هم مانند دیگران رفتار کند. گفتم: نخیر خانم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 من فهمیدم که این چه وضع تماشای تابلوهای نقاشی است توقف او در برابر بعضی از تابلوها به چه قصد بود در واقع به عمق مطالبی که استاد حکایت می کرد پی میبرد یا اینکه ساختگی میخواست خود را خبره و فهمیده نشان دهد شاید همین پردهها را می شناخت و خاطرات گذشته در تخیلش رژه میرفتند. های رعیتی تا پس از حوادث شهریور ما در انبار بود اغلب کسان و دوستان و استاد همان را ندیده بودند سه سال پیش در شهریور من آن را درآوردم و در قاب گذاشتم و آن را آویزان کردم. در این پرده نفرت و انزجار و استاد از آنچه در دوران دیکتاتوری رخ میداد روشن و آشکار جلوگر است. استادی که از خانه‌هایی را که در کنار جاده مازندران مالک جدید آن استان به پول مردم و برای رعایا میساخ نقاشی کرده است. شبه خانه دهقانی در قسمت عقب پرده در محتاب کمرنگ دیده می شود. خانه نوبنیاد آراسته است در عین حال در نور تیره شب شوم و وحشت زده به نظر می آید بر قله کوه پوشیده از جنگل روشنایی خفیفی محسوس است و طبیعت زیبای مازندران را یادآوری می کند مزاره برنج در تاریکی شب درخشان و فرح بخش است در قسمت جلو دهقان پیر و پسر جوانش پاهای خود را که مانند نیمسوز سیاه و کدر هستند روی شغله های آتش گرفتند یا رنج کشیده پیرمرد از لذتی که گرمی آتش نصیبش ساخته میدرخشد. اما نگاه وحشت زده ای پسر دهقان متوجه آن طرفه پرده است. آنجا پیرزنی با تنابی که در دست دارد گااو لاغر و نیمهجانی را به زور می کشد. دیگر حیوان رمقی ندارد و سرمایه اول بهار دارد او را از پای در آورد. سگ بزرگی که کنار آتش روی زمین خوابیده سرش را نیمه بلند کرده.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 دلم میخواست شما میگفتید که چه فهمیدید. من چیز زیادی نفهمیدم. میخواید برایتان بگویم؟ استدعا میکنم. این خانهای رئیتیست. است او یا گفته بودند که خانه باید همیشه پاک و شسته و رفته باشد. مخصوصاً اوایل بهار که علازات به مازندران تشریف میبردند. هر روز معمولی املاک به خانه ها سرک میکشیده که مبادا آلوده باشد. در آن گوشه تابلو آن برآمدگی که مشهدی میفرمایید. خرابه کومه سابق آنهاست. دهقانان آنجا تویله برای گاو و مرغ خود درست کرده بودند و از ترس اینکه خانه های نوبانیاد را کسی فاللوده نکنند خودشان هم در زمستان آنجا زندگی میکردند. اکنون هر روز انتظار شاه را دارند. چاره نیست جز اینکه در همین خانه های نوساز زندگی کنند. منتها برای حشمشان ای وجود ندارد و حیوان دارد از سرما و بیجانی سقت میشود. هر گوشه این پرده برای شما داستانی نقل میکند طرف چپ در قسمت جلوی پرده قسمتی از خانه دیگری توجه شما را جلب می کند. در پنجره این خانه یک سماور برنجی و دو سه تا چراغ هوبابدار میبینید نگاه کنید چطور وقت زده استادان را ساخته؟ یعنی دهقانان در ناز و نعمت به سر میبرند چراغ ها را در اول بهار معموری نملاک به آنهاگر گرو میدهند که هنگام عبور آنها را ببیند پسر دهغان متوجه بلایی که دارد به سرش میآید آید هست و به آنسو نگاه می کند. اول بهار فصل کار و آبیاری است. دهقانان باید با پای لغ در برنسار کار کنند. در خانه وسیله گرم شدن ندارند. نگاهی به این سگ با وفا بیندازید. او هم دارد به پیرزن دهاتی که شاید مادر این جوان است نگاه می کند. شاید اول همین سگ متوجه بلا شده و صاحبش را آگاه ساخته است.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 داشتیم به هم نزدیک می شودیم. آن حالت ساختگی داشت از بین می رفت. احساس کرد که من می توانم به او کمک کنم. نخشهی که پیش خود با شتاب تر کرده بودم داشت عملی می شد. تا کی باشد خانم؟ اگر من باشم؟ شما کی هستید؟ من؟ زنی که چند روز بیشتر در تهران نخواهمم و هیچ کس را در این شهر ندارم. پدر و مادرم هر دو خارج از ایران هستند. و اگر رفتم شاید مرا هرگز نبینید کدام تابلو را می آن تابلویی که من می خواهم در این اتاق نیست کدام تابلو؟ اول بگویید که می خواهش مرا برآورید تا بعد بگویم که کدام تابلو را می خواهم. بسته به این است که شما می زحمت مرا جبران کنید یا خیر اگر شما تابلوی چشمهایش چشم هایش را که باید آنجا باشد و حالا نیست به من بدهید من پنج هزار به شما میدهم. با کمال مهارت و زبردستی که با آن خود را آماده کرده بودم، باز هم غافل گیر شدم. تصور نمی کردم که این زن با چنین جرأتی پیشنهاد دزدی به من بکند. چند لحظه مردد بودم. این چند لحظه برای من زمانی بیپایان بود. سکوت من زن را ترساند. من می دانم که این پول را شما برای خودتان نمی خواهید. می دانم که باید به وزیر و مدیر کل هم بدهید. برای چه مرا وادار به دزدی می کرد؟ آیا فقط برای اینکه تصور کرد که اینجا دو بازار را هر ک هرچه هست و من هم در این جنایت شریکم و یا اینکه ترسید اگر بار دیگر به این موزه بیاید از این تابلوها ها اثری نخواهد بود یا اینکه علاقه به پرده چشمهایش به او اوجرت داد و به من پیشنهاد دزدی کرد و وقتی فهمید که می آن تابلو را برای همیشه نزد خود داشت تصمیم گرفت که شاهکار استاد را برو و به خانه ای ببرد اما چه جرعتی؟ چطور و از کجا انقدر گستاخ شد که شرافت مرا فقط در مقابل پنج هزار تومان بخرد؟ پنج هزار تومان ده سال است که من در این مدرسه خراب شده پشت این میز لکنده نشستم و با وجود دوست های ناتویی که با اناوین بازرس ویژه مادی مدیر و وزیر به اینجا آمدند، نگذاشتم یک صفحه خط استاد بیرون برود و حالا این زن که معلوم نیست از کجا آمده از چراه پالتوی شیگ تن و اتومبیل شیگ زیر پا دارد، آمد از شرافت مرا با پنج هزار تومان بخرد. آخ، چقدر دلم میخواست این زن هرزه را از مدرسه بیرون میکردم. چقدر دلم میخواست به او بگویم خانم، یک بوسه به من بدهید و تابلو مال شما. نه، این زن هر جایی مقصود مرا نمیفهمد. دلم میخواست به او میگفتم خانم، یک شب تا در آغوش من باشید، تابلو مال شما. از کنار بخاری رد شدم، به گوشه تالار، درست روبروی او، کنار دیوار مقابل به فاصله ای که دورتر از آن در چهار دیوار تالار میسر نبود، رفتم و آنجا روی میز کوچکی که مخصوص دفتر یادبود تماشا کنندگان بود نشستم. پاهایم را روی هم انداختم، دستم را زیر چانه گذاشتم و به او خیره نگاه کردم. رنگم پریده بود، تمام قوه و قدرت معنوی خود را جمع کردم و تصمیم گرفتم. خانم: فقط پنج هزار تومان؟ شما موافقت کنید که پرده را به من بدهید هر چه بخواهید خواهم داد. هر چه بخواهم خواهید داد؟ چشمانش برفروخته شد. قذب کرد؟ نمیدانم. من تمام تارهای روح این زن را یکی یکی میشناختم. ساعتی بیشتر پیش من نبود. اما من با این لب دندان و گونه و پیشانی و چانه همچنان که عیزای صورت خودم را می شناختم آشنا بودم. ساعت‌ها ها پی در پی آنها را متادعه کرده بودم. سال‌ها آنها را روزی چندین مرتبه دیده بودم. فقط چشم ها برای من مرموز بود. اما این نگاه غذبناک را تصور نمی کردم. این نگاه شبیه نگاهی که نیم ساعت پیش دل مرا آب کرد نبود. این نگاه یک حیوان گرسنه نبود. شاید هم قصدش تحقیر من بود. اما این حالت چشم فقط یک ثانیه طول کشید. در وحله اول معنای جمله را آنطوری که من در نظر گرفته بودم ادراک نکرد. اما بعد فقط به اندازه یک چشم به هم زدن معنای دومی آن را پذیرفت. به طرف من آمد و باز معدب و مهربان گفت هر مبلغی که بخواهید میدهم. اما من پافشاری کردم و باز گفتم هرچه بخواهم میدهید این بار با لحن دیگری گفتم بی شرمی در آن نبود میخواستم از او قول بگیرم که آنچه من میخواهم بدهد او را ترساندم اما خودم هم ترسیدم با قدم های تند آمد مقابل من ایستاد خشم آلود به من نگاه کرد با چشمایش میخواست در عمق روح من رخنه کند خیال می‌کردم میخواهد مرا بزند بلند شدم و ایستادم و خیره به او نگریستم این بار حالت چشمها شبیه به همان حالت مرموز و پرمعنایی شد که استاد در پرده ثبت کرده است. حالا فهمیدم که چرا چشمها در تابلوی استاد معنای گوناگونی دارد. چرا گاهی انسان را میگریاند و گاهی از همه چیز بیزار میکند. یک قدم دیگر آمد و گفت: بله هرچه بخواهید می دهم. به شرط اینکه بیشرم نباشید. قبول کردم. نشانه خانه تان را به من بدهید. امشب آن را به خانه شما خواهم آورد. چرا همین الان نمیخواید را به من نشان دهید؟ براخره باید معامله انجام بگیرد. چرا نمیخواید همین الان معامله انجام بگیرد؟ همینجا به من نشان بدهید. همش که نباید مطابق میل شما باشد. بگذارید یک بار در زندگی با مردی روبرو شوید که از شما استخاندارتر است. شما تصور نکنید که حیثیت و شرافت مرا با 5000 تومان میتوانید بخرید. من به شما قول میدهم که تابلو را امشب به خانه شما خواهم آورد.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 دیگر شیرین زبانی در کار نبود نقاب و صورتش افتاد و چهرهی کریه نه چهره کریه نداشت چهره اش را به من نمایاند نشانی خانهاش را گرفتم در یکی از خیابان هایی که از خیابان پشت سفارت انگلیس منشعب میشد منزل داشت او را تا دم در حیات مدرسه مشایعت کردم در اتومبیلش را باز کردم و وقتی خاک خیابان به هوا برخاست به مدرسه برگشتم